عشقه خدایی موسیقی ملایه می گذاشتم و بیشتر اوقات شب را بدان گوش میکردم. در حالی که ذهنم بر روی روازار و کارهایش دور میزد. امشب شبی بود که دست به آزمونی میزدم تا ببینم استاد تبتییم چگونه بدان پاسخ خواهد داد. با استفاده از شیوه های متفاوتی پوشش نمودم قدرت افکارم را گسترش بخشم تا شاید بتوانم او را به حوضه آگاهی خودم جذب نمایم اما هیچ نتیجه حاصل نشد آنگاه این فکر به ذهنم خطور کرد که از ارتعاشاتم نوعی حرکت جنبشی ایجاد کنم که با نوسانات ذهنیم به صورت منحنی هایی به بیرون از خودم منتشر شود نوعی نور خیالی که امواج آن را بشود به ارتعاشات یک ناقوس در حال نواختن تشبیه کرد مانند ارتعاشاتی که به عقب و جلو می روند تا جایی که به سرحدات دات رسیده و دوباره به سوی خودم بازگردند این ارتعاشات جریانی از نور بودند که با ابراز شگرسی از شف و نیت خیر نسبت به ربازارتارز پر شده بودند ناگهان او را دیدم که کنار تخت خوابم ایستاده و با برقی در چشمانش به من نگاه می کرد پس تو راز نفوذ به مرا آموختی؟ پال، چگونه توانستم این کار را انجام دهم؟ من خیلی کنجکاوم بدانم چه اتفاقی افتاد به بازار تو ارتعاشاتی برپا کردی که من به واسطه آنها توانستم به سوی تو سفر کنم کسانی که می توانند چون این کاری را انجام دهند چه از روی عمل و چه بر حسب اتفاق بسیار معدودند. اما من می دانستم که ذهن باهوش و زیرک تو ایدیازود میباید راهی بیابد که با من تماس بگیرد. چندین راه دیگر هم وجود دارند که در وقتی مناسب درباره آنها با تو صحبت خواهم کرد. پال: سرورم من آمادهم تا امر تو را به کار بندم. چه باید بکنم ؟ بازار هیچ جز آنچه به تو می گویم. اینکه با چنان شدتی به خدا ایمان داشته باشید که تقریبا دردناک باشد. از این هم فراتر برو. این را بدان که برترین صلاح کائنات در آنچه من برای تو انجام میدهم نهفته است. نه فقط نه به شخصی تو. هیچ کاری را انجام نده مگر اینکه افکارت را بر روی خدا داشته باشی. آنچه من برایت میآورم، در جهت منافع مأموریتی است که من در این طبقه زمینی دارم. می‌باید این را درک کنید که من قادرم همه آسمان و زمین را به حرکت درآورم، اما معدودی بیش نیستند که به خواست خدا پاسخگو باشند. آن اهل تبت به طرف من خم شد، صورتش بیش از یک وجب از صورت من فاصله نداشت. چشمانش همچون دو قرص آتش میگداختند احساسی به من دست داد که گویی هزاران فرسنگ از این جهان دور شده باشند. بازار تارس ای محبوب ترینم این را با تو میگویم در این گفته ها یقین مطلق حاکم است که تو اعتماد ایمان و یقینی در حد کمال به کلام من داشته باشی. البته تو چاره دیگری هم نداری زیرا این حقایق همانگونه در ذات تو تعبیه گشتهاند که هوایی که اطراف ما و در سینه ما وجود دارد و ما را راه گریزی از تنفت آن نیست از برای تو هیچ راه گریزی موجود نیست مگر اینکه بالاترین یقین و عشق را به کلام من داشته باشی. پس آنچه با تو میگویم، ماطرین حقایق خدایی است. من دلگاهی بالاتر از این نخواهی یافت. چون از آنجا که من خدایم، میتوانم و مایلم این قریحه شگفت‌انگیز را به تو ارزانی دارم که خود را به طریق کلام مکتوب بیان کنی. قدرت اک درون تو بیدار شده است و تو به عنوان مجرایی برای آن عمل میکنی. ذهنتو فراسوی آنچه میتوانی انتظار داشته باشی گسترده خواهد شد آیا میدانی چه خدایی در حال واقعه است؟ اک در حال مستولی شدن بر توست تو داری به آن بدن میشوی به منزله روح الهی عمل میکنی سخن میگویی، میبینی، میفهمی، میدانی و زندگی را به ظهور میرسانی از جایگاه پروردگار جهانها و کائنات با فروتنی محض آخرین ذره نیرو و نفس خیش را در راه او و به نام او صرف کن چون زندگی تو آنچنان دگرگون خواهد شد که روزی در شگفت خواهی شد از اینکه چه کسی بود آنکه روزی این کال بد جسمانی تو را اشغال کرده بود آری حتی شاخصهای جسمانیت و شکل چهره‌ات هم تغییر خواهد کرد پس به نیروی خدایی چشم داشته باش زیرا همستون دارد از تو به مسابه مجرایی استفاده می که از طریق آن قدرت بالاترین طبقات الهی به این طبقه زمینی جاری می شود تو داری در میان ما ساکنین جهانهای درون به فرزند نور ملقب می شود.